مرامنامه نشست های مهانی دانشگاه سپندها ها رو برای شما عزیزمان میخونم. یک. باشندگی به شما در نشست ها شوند بهرهگیری بیشتر از آموزه خواهد شد. دو. برمه برای آغاز سخن و فرزش کردن شماله یک را در بخش پیار روان کنید. و فرزش کردن در بخش پیار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 به هیچ روی از استادان آگاهی فردی مانند کشور یا شهری که زندگی می کنند شماره تلفن و سایر اطلاعات را نخواهید. چنانچه آگاهی بیشت از گردننده no. اگر به اگر به پایان نشست بی دانشگاه سپنتا زمینه را برای پاسخ استاد پرسشتان پس از نشست فراهم خواهد کرد. د. از بکار بردن هر گونه واجه ناپسند و ناسزاگویی به دیگران و اندیشه ها و آینها خودداری نمایید 11. سخنان هر یک از سخنرانان و باشندگان در نوش ها از ها خود آنان بوده و پاسخگویی یا محصولیت آن هم با خود آنان می باشد و آنها از سوی دانشگاه سپنت ها برای شاشنائی همینان با اندیشوها و پیجوهشهای استادان بنابونید. دوستان بزرگوار گفتمانمون رو پیرامون رو پیرامون چگونگی برود زبان ترکی به ایران با باشدارید. استادید. باشم. بناوا سنار خواهشنو بفرمایید بفرمایید خب من بفرمایی. هر طور که پروگرام واسه طرازمیزه شما سرید صداهای افسون نمیدونم چی است صدای من میم دوستان خواهش میکنم بلنگو رو ببندید خواهش می‌کنم و بتونیم از گفتار استاد بزرگوار بهره ببرد. وحید گرامی، بلنگوتون رو ببندید بمر. بفرمایید استاد پوزش می‌خواه. من هتا که گفتگوی کردم فرازی از عوستا رو آرایه ی گفتگوی کدنبه. اوستا می که ایرگنم کوهرنو یه زمه ایده این به زبان فهلوی می شود پر ایران را می سکن دو کر را می شنو سنده ایکی ایرگنم کوهرنو یکی کبینی این کوهرنو پر شاهنشاهی ایران و پر کشوره ایران کران ایرام زمین درود می کنیم نمی که برای گفتگو هست چه همه هست می بایستی که کرانشو من که یک نوان هم با... بکنم این جاستان استادی که بارش گفتدی مقاید کنیم کسیار آ... گفتار ژرف هست بسیار بسیار همپچید است دختار است دانشی یا دانشگاهی خشور بخانه در میان ایرانیان مانند بسیاری از دانش های دیگر در این زمینه آگاهی بسیار ناروشنی هست بسیار بسیار ناروشن بیشتر سخنانی که در این زمین شنیده میشه روی گمان ها هست گاه میتوانم بگم که روی آلوگی ها و جاش سخنان و سخنان هست. من پیش ندیدم که پژوهشی ایرانیان درباره ترک شناسی داشته باشند من ندیدم هرچه هست سخنانی است که بر های پوچ استوار هست این در انگامی هست که ما بالاترین دوباره میگم بالاترین برج ترک شناسی رو در دست داریم که میگیم ما به زبان ایرانی میگیم ایرانیان تنها مردمانیتی هستند که در این زمینه برجک‌های بسیار بسیار در پروا هم همش گفت که درد اون که این برجکا پرداخته نمیشه بسیار بسیار شگفته. این bunchak ها یک سو برای خودشان هستند. سخن های و بیریشه در میان مردم بسیار روار است. برای پرداختن به این سخن نبایستی به بسیاری چیز ها پرداشتیم <تصفح> شاید نتوانید در این هنگام بایان کنیم من که هم نخوش هستم اما تو می کنوارم که بخشایش بماند در این هنگام هایی دید. برای پرداختن به این جستار می بایستی به شناسی بسیار نگاه به زبان یونان جیوکرافی های میبایستی می به باستان شناسی نباید اینکه که شناسی میگن یا زمین شناسی یا جیوکرافی بیشتر خواست من این هست که نام های زمین شناسی رو مانم به نام آبادیها. رودها، توها، اینجور نام به اینها باید نگاه کرد بسیار به اینها باید نگاه ده. پیش این رو دنبال کنم این را که گفتم یاد روانساد کسروی دادم که میگوید که اگر میخواهید که شناسه یک مردم را به شناسه مردم این ببرید به نام های زمین شناسی دشت و کوه و رود و اون چیزها نگاه بکنید مردمان از زبان خیش آن نام را بر بخش های زمین شناسی دسته که برای نمونه سردود در تبریز یا خود نام تبریز یا برزن تبریز را نگاه این نام, ها، نام های ایرانی است از اینجا راحت دونست این آسان‌ترین است که نادیده گرفته بشه آسان‌ترین است و نادیده امن گرفته میشه از آنجا خواهید دانست که مردمی که این نام را به بخشای باشندگی قیش گذاشتند می‌بایستی از زبان نهاده باشند که به آن زبان گفتید برای این میگم که برای پاسخ به این پرسش یا هر جستار ترک شناسی بسیار به این نام های شناسی یا زمین شناسی نگاه کرد. دوم این است که می بایستی به باستان شناسی نگرست هرچند که مردمی را که شما به نام به نام ترک می شناسی پیشینه باستانی ندارن برای همینم هم است که در هیچ باستانخانه یکیدی شما نمی بینید که باستانخانه جایی ویشه ی ترکان کذاشته باشند. همچین چیزی نیست. در هیچ کجا نیست. در سرزمین هایی هم که گرفتن و نشستند که نام های ایرانی دارد و میرساند که اینان باشندگانان سرزمین نبودند. این نام هایی که شما میشیند نام هایی هایی که کسانی با این نام میشه نوید نام که در همین سده نزدیک نهاده شده است در هیچ نسخ نوشته هایی پیدا کنه خودشان که نمی نوشتن نوشته های ما هم که بونه ترکچناسی هست از یک چنیچه چنی زید آقاهی نمیدن من هرگاه به این واسطانه های هیتی رفتم ندیدم جلی چیزی پرسیدم و <تصفيق> بااس و پررسش را نمی دهند میخدم می که اینات مردم باستان این سر نگه باشن که جایی برایشان میستند. به برای این مونه به کشوری که نام ایرانی ترکیه دارد از اونجا که میروید می که اینا نگهبان بر جایمانده باستانی ایرانیان یا ایرانی هستند و اینا بسیار آسان دیده میشه که، با بسیار با آسانی دمیشه که این مردمان مردمان کوهن در اونجا نیستن نه تنها کوهن، مردمان هستن که گذشته ندارن مردمانی هستن که گذشته ندارن چون ما هیچ چیز باستانی، هیچ چیز باستانشناسی در این زمینه نمی دوادیم نگاه کنیم برای نمونه که از باستانشناسی گفتم بسیار از از پجوهشگران سرزمینی را که شما به نام منگولستان میشناسید رو خواستگاهآنان میدانند این نادرسته خواستگاهآنان مونگولستان نیست که مغولستان دارای باستانشناسی ایرانی است هر دو هم منگولستان درونی که در ساختاره کشور ایرانی نام چین هست ما این نام را به اونا بازاشتیم ما سرزمین فش را به این نام نمینام هم برونی ما چیزی آنچه که شما زیر خاک را یه میبینید باستاش ناشید چیزی نمیدینید اونجا در بخش فرازین امین منگولستان اگر به بالا برابید Uh, بسیاری جایگاه های زیزگاه جا زیز های مردم یغت را گاهی یا این رو به یکوت نیمسنگی را نادرست است. مردم یغت را، جایگاه ها مردم یغت را، جایگاه ها ننبونجا باستان هیچ چیزی که از زیر خاکگر شما به بهش نام باستاش ناسی بدعی تو هر چیزی آسانترینش این است که یک کوزه یک کوزه بسیار صفالگری بیگه بسیار چیزی هر کس چنین چیز, چنی چیز نه تنها کوزه ندارن برای صفالگری هم باشه ندارن ساکسی میگوین، ساکسی از واشه نژاد ایرانی سکس سکه کار آنها را نشان دارین ترکتران دار. به چنین چیزی نیست اینها نبودن این کارها نبودن این چیزها همچنین زبانشناسی بود که نوشته ندارن و همچنین به زبان هم که نگاه میکنی اون چی را که شما به نما به دروفا به نام ترکی که مینامند به اونها که نگاه میکنید کار را بسیار سخت میکنند که داوری رو بسیار سخت که اینان چه بودند از کجا آمد؟ یعنید اندکی از هنگامی که ما داشتیم برای سختی که با این دستگاه که بیهوده شد برای اینکه دودتر با این که از کم به بخشی از این پرس اشخاص به همین نام کش از اینجا نگاه کنید نامی ایرانیان را بینگه هم اگر سنگ نوشته های ایرانیان را کنار بست نوشته شاهنشاه سوانشاه داریوشه بزرگ تخامل شاهنشاه هماری را کنار بسند خیش بخیل رو به خود میگوید ازم آریوم و ناریایی هست اینا نگاه نکنید نوشته های عوستا رو هم نگاه نکنید روید نسکایی که به زبان ما هست سنسکرید زبان سیرانی با عوستا یکیست دستور زبانش هم یکیست به گرگونی اندکی داره بسیار بسیار ردن. در آنجا مردم آریایی رو با این نام میشناسید. من بیرون از نوشته های خودمان دردارم. در آنجا شما میتوانید پنچاک برای نام این مردم به نام این کشور و نام این نژاد بیابید. آنگاه برای مردمی که در صده های نزدیک پیدا شدن باز دوباره گویم در صده های نزدیک پیدا شدن شما هیچ نوشته نمی آدن ساکروپیا بریتانیکا جمان کنم که سال نونزده در زیر نام مونگول، این مونگول هست اول از کارباجه بگویم تورکی از کارواجه ترکی شدن هست، منک میشود درمانده شده ایرانی ها اینو مغل کردن نمیدونم چرا، لحظش در زبان ایرانیان فراوان است. نفتر هایی کارها رو میکنن، نام های یونانیان ها رو میبرن در دستگاه زبان تازی و از زبان تازی آنها رو میگوید، شگفت است فلاتون را افلاتون میگوین چون در زبان ایرانی ها ای نیست برای اون است که اونجوری سیده ما هستم چیزی ما خودشان شکل ایرانی ها با این کار این است که مونکل را زیر این واجه میگوید که تا این هنگام تا هنگام مونکلان گذشته اینان در تاریکی نهود است درست است من کوتاه بکنم. از که فی کرده از اینطور بخته بکردم توتاه بکنم. در باره این در یک دره ای خود میگوین که برخون. نام ایرانی دارد. ار گنه کن. کن واژه سانسکریت واژه بایجه گوشه یا یا یکی شما می بایستی زبانشناسی بدانید اگر نمی کنید با این واجبان دار این یک بیشه کیست هر کسی نمی این کار را بکنند نیست که چون شما شنوندگان دانشگاهی هستید این, این شوخی نیست که من بگم اونجا برگم کنم گوشه یکی آید و در روی گر اونجا یک سنگپارهای برای نخستین بار اینکه میگویم نوشته نمیشه نوشته نشد اس ینا برای نخستین بار در صده هفتم پس از پرجام یافتن شاهنشاهی ومایونی ساسانی پس از اینکه ما خداوندگاران روی زمین دیواری بودیم در نزد مردمی دشمن شهرگری آرامش بگی که میدادین انگامی که خداوندگاری ما از میان رفت میبینیم که مردمی که در بالای سرد سیر جمان کنم استخری پارسی میگوید که بیرانه شما او این نام را میدردانم می که گمان کنم نسکی دارد کنم استخریه قارسی مساقی در موال اکتمام در آنجا به زبان ایران درشت است می که اینان در دیرانی شما می زید هر کجا هست این دیرانی شمال هر کجا هست باید جایگاهی باشد که ما می توانیم اه اه همین جایگاهی موزی یک را بشناسیم بسیار بسیارندکی چماره بسیار بسیار اندکی این که شما امروز می‌بینید مردم بسیاری با این نام هستن همهش نادرسته همهش نادرست هست شما هر کسی را که به یکی یکی یک زبانی این گونه گفتگو گفتگون میکرد ناکرد به نامید لغزش لفظش نابخشودنیست لفظشی نابخشودنیست اما خب لفظش هستید هست. بایستی از این سرزمینه به پایین آمده پس از شانشایی همانی این درست نیست، این گفتگوی من درست نیست بگم که در پایان شانشایی احساسم چرا درست نیست؟ برای اینکه باید دارم که پستر از سراسر سر آسیای میانه آسیه دور نه که اونجایی که شما کره و اینها رو میشنه هستید اونها نه تا همین ویرانیه فراز که سخی از آشیه ها دیوار چین برای این ساخته شده همین دیوار چین را برای این ساختن که این مردم دد یابانشین کوچنده که درون شهرهای چین رخنه نکنند برای اون سر. پشت این ها پشت این بیگار تا اروپا تا کجا؟ تا سیسی، مردم ایرانی سکه نجاد ایرانی سکه نجاده های گناگون هست گرگ هست که گرگان را باید تشنید سکه و سکه هم تیره های گناگون دارن بسیار تیره های گناگون محصی همین ماهی میشه باشه این محصیل انگلیسی به زبان پرتکان گراندی امروزی همون ماهی میشه هی و سه جا به جا میشه مانده احور ها اصور در سنسکریت و عوصه یا محنوم سرم که افزاش میشه سرمن روکسولان الان یا ایرانیان سرگی آز که آزاده میشه افضای اونا در زبان ایرانی شما بهش نوبل از آزاده ایرانی هستم چم نوبل کار از تیراهای اوناگون این تیراهای گوناگون همه این آسیای میانه رو میپوشندن و آسیسو. همه اون چرا ایران میگن؟ خب شما در دانشگاه نشستید یا دانشگاهی هست از من میتبانید رو گرسید چرا ایران؟ من کفتم باستان شناسی رو ببنم بخش های آسیای میانه، آسیای دو، فراز آسیا، همه نام ایرانی دارن گذشته از این باستان شناسی زیر به زبان مردم همگانی ایران اینا همه ایرانیه مادر که ازش کفتم کنم در میلان در لندن در کوههای کارپات یا آرپاد، نام ایرانی به سربیا فراز جرمن، کشوری که نام ساختگی ایرانی 1921 ترکیه را مشبره همش همه آسیای میانه سراسر کافکاز، فواصل ایرانی سکان هست اوکراین بیشترین یافته های زرین، از آن ماست از آن هست ما مردم که سپس آمدن اونجا رو بسیار خوب میشناسیم همین هستن، همین مردم هستن نمیدم، گفتم یا نه یا زیاد بچیره به بختارم بیستم برای سر مکنه بود در نامه گفتم که صده هفتم که خوبی نباید اونجوری نکفتم اما خب سده نمیذاشتن، اونا پایین بیان، بسیار شمار جمعی بودن، پایین بیامدن، برای کمی جا و برای نمونه مردم فین، از زمین فین امروز میشینن خودشون رو سو رو سو رو میشود، باشه چی نیست؟ سوپ میشود آب در زبان ترکی هم همید. در زبان ترکی برای آب واجه نداره نداره واجه سوپ چیست؟ چی و این ها را که باشندگان پراز زمین بودن در شاهنشاهی حقاملشی نتوانستن پایین بیاین یعنی میزنه در همون راستا به بالا رفتن. نه به بالا، در بالا بودن داستای بالا رفتن. تفتونه پراز. نوردو فراز کشور سوئد، همین امپیلات، واشندگان مردم واشندگانی چنمیش میتونید بگید بومی. چون اینایی که ازشون یاد کردم نروژی، سوئدی، فنی، اینا مردمان کوچنده به او سر زمین هستند. واشندگان چهره های مغولی دارند. میبایستی از بخشهایی که به نام یا کتی یا مینامم از اونجا رفته باشه فینی هم, هم های اماری، اودمورد، کومی و اینها همه در این هنگام، در هنگام های یا نمیشود دو هزار سال چون در دو هزار سال پیش یه سیکی زیرا آف در دو هزار سال پس از اون بایدن که نمیتوازدن پایریا برای که تیره ایرانی سکه که تیره های بزرگ اروپایی از اشکم تیره سطرد و گرامی ایرانی برآمده نمیگذاشت که چنین باشد اینا ای تیره های تحلبان ایرانی، تیره های جنگاور ایران هستند. اون چرا که به نام شاهنامه مینامی یادگار همانه است. نوی درصدش یاد به جنگاوری و پهلوانی جنگ آنها هست اینا نمیدلوشن جمعی چیزی باشد که کسی از اون بالا به پایی بیانه این کوتاه یه چیزی میگم سپس بپستم ببینم که چی کار باید میکنیم دنبال میکنیم با هست چی هست پرسش هست چی هست نگه می‌دارم گفته برای یک بار گفتم که سایکروپی بریتانیکا اینجوری میگه میگه ما نمیدونیم این ها کجا بودن. کسی که نامه اینان چه بوده است برای نمونه نام های تیره های اینان را نگاه کن. یوگر یوگر منگول نام ترکیش دیگه بچه ما نام ترکیس تنگوز یا دور میشود خود هم یه مردمی از ترکان هست هم یه زبانی از آنان سی گوش ارالالتایی میگن دو تا فقوح ایرانی نام هستن و زبانشناس این مهدم رو مهدمان بوها نام میگن برای در شهرگه نمیشستن کناچه ها چواهد که برای زبان رو نام رو دودارن بگن که اینا مهدمان ارالالتایی هستن همچنان که ما را اوندجه همین یا من جاید ایروفایی کنم اونا رو ارالالتایی میگن منگور تقس تقوز اگوز قرخز یا هرسز به زبانی که امروز در تورکیه هست میشهد دوست. اغری همون یوغور هست. بازم میشهد دوست. من گرده بلیستم اما دوست را اغری میگید. یعنی یه یه هست این مرمون. یغت. اینا سلجوک. ایرانی ها چیک؟ سلجو بیده. سلجوک. مانند خدایجک. پسپند فهلویست. سال میشود برفکندن. نابود کردن. قضا. کندن او نابود کردن. تا از واجه اید یعنی بازم نابود کردن. گاز گرفتن. چنگ زدن. اینا ناما اینان است. نام نرم و ایرانی از دیدگاه زبان شناسی ترک را نگاه کنیدید به این نام هایی که افتن میخوره نه این نام ایرانیه، نام اینا نمی باشه. نمی باشه از دیدگاه زبان شناسی باشه. به اینا شما نمی نام ترک بدهید. گرفتند این نامایی نام, نام ایرانی است. نه تنها براش برای این نام ما بنچاک داریم. جواه داریم که از دیدگاه زبانی شما نمی توانید این نام را به اینا بده. آری در در ارگنکون یا ارخون اونجا که یعنی سهی یعنی می شود نو واژه یانگی که در انگلیسی هست واژه کرتی میست برای واژه نو در کرتی ما واژه نداریم یعنی همون واژه یانگ هست ایرانی هست واجه سرکی هست. یا که باشه چای را از اون درست کردن که میشه و درود و آب باشه چی در اونجا برای یکم ایمان پسند که ایرانیان رفتن در مغولستان آمدن و ایرانیان به دبیره ایرانی رونیک برای آنان نوشته ای نوشتن در اونجا در صده هفتم به این مردم این نام را دادند. گفتگو بسیار زیاده جام و تواریر که گفتم زیاده مخوام بذارم برای آیت جامعه و تواریخ نگاه کنید چی میگه؟ تمامت اقوام ترکان بنده و لشگریان چنگیز هستند. خوب بنیوشید این سخنه را. همه اقوام ترک و منگول به هم ماننده ان. به هم ماننده میگم که شنوندگان گویا یا دانشو هستند. اه. باید در آینده گفته این زمینه که چرا ایرانیانی هستند با چهره مغولی در خراسان نام نادرست افغانستان، در تاجیکستان نام نادرست صبح میشینند و این ایرانی گفته اونجا کسانی هم به نام ترکی ترکمان میشناسید اینها هم به یکی از همین تاتار یا دیگر یا جور این ها هم گفتن. این درست در نمیاد دو تا چهره درست در نمیاد اینایی که گفتم زبان ایرانی گفته می کسانی با نژاد منگولی هستند که زبان ایرانی فراغتند آنانی که زبان ایرانی گفتگو میکنن با چهره من چهره کافکازی چهره جرمنی که من این زبان رو گفته کنه مردمان ایرانی هستن. زبانش دیگه همه اقوام تورک و مغول به هم مانندن. نادان که نبوده که این مرد این دیده است این را میگوید به هم ماننده همه همه احوام ترکمهول به هم ماننده پس مردم اردبیل به سادگی دیگه شما میگید زبان کی آمده اونجا زبان آمده اونجا پس این مردم چهره ایرانی، چهره آریایی، چهره جرمنی و چهره کپکازی دارد و شکل و لغت و جمله آنان در اصل یکیست مونگول سنفی از ترکان بود. گفتم به شما. مونگول تونگوس یا دووس که می شود بود و مونگول تونگوز و تردین ستا یه سگوش ارالاتایی را می ساد. اقوام مونگول سنفی از ترکان هستند. دوباره می ده. شکل و لغت ایشان به یکدیگر ماننده و نزدیک مجموعه آن اقوام را کتاب و خطی نبود است. من گفتم به چی گرشتم. برای نسک ماتیکان بوک بوک واجی ایرانی تیچیده من ادبی هسه ما در هر ادبی با بو بیتم بوکچه که شما بوخته میگی که ارا قای میگوی ما با بی دروای این که نمیدون چی بوکچه میشه بوکوتیک ندارن برای این واژگان ندارن کامه بدن داد کاغذ دفتر همچی چیزی در زبانشان آم نیست آموزشگاه ها نوشتن آموزشگاه اینام نیست گفتم که به زبان که بگاه بانید که کی هستن این ها روی به آزربایدان نهادن این آمدنشون اینجوری قطل و تاراج به جای آوردن چجوری گفتید اومده؟ پرسه چی نیدید؟ اینجوری آمدن قطل و تاراج به جای آوردن چون به تبریز رسیدن مراغه را محاصره کردن از ایران را پیش کردن هر کدام بازگشتند کشته شدن چند روز شریف بود تا آقابت شهر را گرف هرچه حملش آسان بود ببردند باقی دسوختند و بکشتند به حمدان رفتند در ری حمدان اسفهان مراغه، اردبیل سرا به قوم شدند مردم به کلی کشتند کودکان اسیر کردند و رفتند از آنجا آزم اران شدند اران این کشور ساختکار دروغین ترخکار هست که دوزدان و جناهکاران نام ایرانی ارامی و سقنت آزربایگان را که نام غلط است آذرباییجان نداره ما پسنده جان در زبانبللت ندارییم پس گان هست آچ شد ناززار شده در زبان ایرانی اینا دو اومده همون نااززار رو نداشته برده در آیننمونه زنجان نیست و زنگان هست یکار گلپایگان اونجا مونده گلپایجان جان نمیتونونه به نشره گلپایگان یا شیرگان بوده سیر شده، ما پسنده جان ندارییم این دو, دو آمده همون نام رو برده اونجا این دااخه این نامش اران است. از آزم اران شده. از این شهر اران گنج را قصد کرده، چندان خلقه ایشان بکشتند پس نکشته. تاتارانو گفت قیزان بیابان نشینان هست. بیابان نشینان خب این نویسنده در این سالهای که نوزیست اگر شما امروز مردم عدبی منک که من و من را دیدید. این لغزش چی این نویسنده ی کامو در اون زمان چرا نمیگه که نه در از بیری میشین اینجا در چنین چیزی نبوده این لفظش میگم نابخشدنی می و گرانی است. دیگر اصناف ترکان را تاتار میگوید تمامت باقلان و اصناف ترکان و سهرانشکیدان از یک نسلن باقلان یک قوم بودن از اقوام ترکان لفظ ترک در قدی نبودین که من میگم نام ترک نبوده است نبوده و نبوده است. این نامیدانیه به آنان دادن من بسیار دفترها دارم گواهان دارم نوشته دارم نوشته که اصفار بکنم که این نام نیست یکیش این است یکیش است لفظ ترک در قدیم نبوده همه اقوام بیابان نشین ترک شکل را ترک مطلق بکتن از آنان تاتاران هستن همچنین اقوام ای را که از قدیم تاکنون کنونیشان را ترک بکتن و میگویند در سهرا و توها و بیشه ها و دشت قبچاق و سیبریه و مغولستان متصل به دیوار چی هستند. مردم شهرنشین از مردم بیاباننشین جدا هستند. این زمان مجموع اوغزان را ترکمان گویند. از آمی اقوام ترک بیابان نشین اوغز. دیگر اقوام تاتار اون رایت تاتار مانند هر طایفه بدوی پایبند اقامت در محلی ثابت نگودند. برای این همینی. طایفه تاتار و اتباع چنگیز و جانشین آیت خرابی دیدن هر جا قدم گذاشتن آبادی ها سیر رو کردن گاهی از این ترین شهرها را و, دشت و آمون برابر کردن آنچه در میان شهرها خراب کردند، بایر و معتل مانده، چون بایرات آذربایجان. خب من وان میستم اینجا گفتگورو وان میستونم اگر پرسشی هست من میتوانم پاسک بودم گفتار را به آینده بیم سپاس از شما استاد بزرگوار با وجود این که بیمار بودید ولی زحمت کشیدید و به این نشست اومدید و ما بسیار بهره بردیم سپاسگزارم از شما از سوی دانشگاه سپنیتا و از سوی دانشجویا بزرگوار اگر پرسشی دارید در بخش چه تهمه کنید عدد یک رو روان کنید من خودم پرسه شدم با پروانه شما میپرسم جنب وستا چگونه زبان ترکی رو در ایران جا انداختن؟ سپاسگزارم. این, پرسش... این پرسش سنگینیه بسیار بسیار پرسش سنگینیه بسیار زیاد پاسخش را من یاراش رو نمیتوانم داشته باشم که در یک پاسخ کتاهای نمیدونم چند شمارکی بدم. این شدنی نیست اما آنچه که میتوانم بگویم اینه که پیش از اینم گفتم اکنون هم ببنیم. ما نوشته ها فراوان داریم در این زمین نوشته هایی هست وضا زاده ادبیدی در زمان سقدیان نوشته شده کوهی انارات نوشته شده نوشته زبان مع قبلیش چه می این اون نوشته هست ما داریم که مدن کوه و برزن انارجان بر که آقادی است در, در, در نزدیک است چه زبانی کور می ما میدون چگونه تا این دااخن؟ کنم من پاسه شما را همینجوری که شمشیر اسپانیا دوزان رو تبهکاران اسپانیایی کیش تصایی خویش را به آمریکای تایین برد امروز برای همون به اژامیکایی را اون زبان را در اونجا بردند کممتر از دوصدده همه اون بخش ها رو به امروز می شاسسی دیه همه رو مکزیک ودون کلمبیا و آرژانبی رو نمیدم یک زبان کردن همون هم در ایران اینجاه. بسیار آسان زبان که امروز در هندوستان هست در زبان پرتغالی است پرتغالیان در اونجا بودن زبان گم را پرتغاالی کرده. هم شیر زور زبانی است آمده بازظور به زبان هم که نگاه میکنید میبینید که بسیار شکسته است توانای زبان ایرانی بسیار بالا بوده است نه مانند به زبان مردم پایین آمریکا است. این است که زور این کار را کرده است زور و کشتار و نابودی کندم دیگه زبان نویسنده جام تواریخ برای شما خواندم که زبان چه جوری در آنجا نشسته است سپاسگزارم کداون مهداد پرسش دارم بفرمایید با سپاس از شما بانو و با دورو بر شما جا دکتر سوودده من محال هستم اما مانا هستیم یک پرسش کوچیکی اف دو پرسش از شما دارم که در یک سال سری می کنم انجامش بدم نخواست این پرسش از زبان هندی اگر توجه کنیم ما با جان زیاد پارسی داریم و تا اونجا که من میدونم اگر درست باشه در آن زمان قبل از ورود انگلستان به کمپانی انگلستان به هندوستان این دوستان فارسی صحبت می کردند. اگر امکانش هستین توضیح بدید یا ریشه زبانشون اصلا از کجا آمده و پرسش دوم نام لندن رو شما در سخنرانیتون فرموده بودید که این واژه از زبان فارسی گرفته شده واسپاس از مهر شما نه. خب باره مهداد گرامی من با شما هستم زبان پارسی نه زبان پارسی زبان اسنوبی من هم باور دارم زبانی به اینام نیست این نام ساختگی است نقشش است و به زیان ایران است نام زبان ایرانی زبان ایرانی هم چنان که ویتنام ویتنامی ویتنام و فرانسه فرانسوی و انگلیسی است ایران هم کشور هست و زبانش مال یک اوستان نیست و این زبان هیچ از اون استان نیامده پیوندی هم اون نداره زبانی که ما بکتابی میکردیم پهلوی بوده است میبایست یکتون دست کم پهلوی نوبی باشه این, این اون بخش <تصفح> <تصفح> اون دون واجه آب است به زبان سکه به زبان مردم سرم افزاش میشود سرم اکنون در کمپوست ایرانیان میشینند از نژاد سکه ما از نژاد سکه هستیم ما اونجا اون زبان سکه ما هستیم که خودشون ایرونی این زبان در اونجا هست تنها بخشی از زبان کوهن ایرانی که کوهنتر از عوسته هست، مانده در اونجاست از زبان ایران است. از دوم میشه باید در هیچ کدام از زبان های کشورهای اروپی از آن میان انگلستان هیچ چمی ندارد هیچ چمی نداره نمیتوانه چنین باشه از زبان ایران نهاده نشته چون که ایر در اینجا می‌نشستن، در لندون می‌نشستن، از زبان خودشون نامه لباندون دو، به اونجا دادن پرسشت یکون را، من داداشت دو فراموشت آه، هندوستان, خود... آره هندوستان خوب هند خودش نامه ایرانی است حوثه جا به میشه، باید اونا، باید سند بگید و سند هم میشود گریان، همین کاره، تازی میشود گریان آره، زبان اونا، زبان. ا... ایرانی بوده، است، سانسکریت زبان ایست ایرانی و دیگر شد و خوب در صدیه میانی به همین زبان قهلوی ایرانی شد. شد چون که فرماندوایانی که در دبستان ایرانی زبان ایرانی را پرا گرفتند و از به اونجا رفتند، نام های ایرانی داشتن و رفتند و زبان ایرانی در اونجا بود زبان را ایرانی تر کردن جاهایی که نمیدنم تاج محل رو نمیدونم ارجمند و اورنگزیبون و دما اینا هستن نگاه میکنید ببینید که خب زبان ایرانی انگلیسیایی کاری رو کرده من میتوانم بگم که این جنایت رو کردن که خب به کام خودشون میخواستن که زبان ایرانی رو در آنجا براندازن که از برانداختن زبان ایرانی در اونجا تا هیچ 18 بود کسایی که برای نمونه آن بود از که از فرانسه اونجا از بهتینان زبان همستا خراب بگیرد ناچار می شود زبان ایرانی یاد بگیرد تا به توانه رفا مددان بخده این روست و در کشتیان که در همگوچرات هم در بخشای هندیشنه این زبان را از دست دادن همچنان که مردمی هست زبان پیوسته در دگرگونی بود است پیوسته که میگویم به ریخ ناچهی سیجون میگید، باید برد. باید باید، به ریخت ناچهری جا شده است و مردمان همون است مردم اولین همتنان مردم ایرانی است که جمعیزات ساوی شده تبریز، زنگان، نمیدنان، بخشای دیگه است این لحظه شده است که به اینا مردم بیگاله بگید ترک نام ایرانی است اما مردم همگانی که آدواهی از این چیز مردم ایران گرفتاری بسیار زیاد دارد. یه نام ساختگی آوردن ایندافتن تو ایران به نام پارس حالا پارس هم که اپلیکیشن ندارند به زبان شو پارس یه دستا هم میگن که تو بسیار خنده دار است و بیخود خودشان را با این کار نیا می چنند دیگه ما هم ترجیح میدیم کوششان اولی هستیم کوشش کنید که بی خودتون رو بیشتر بکنید بگید یه زبان هست به نام پارسی پارسی میره بودید ایندافتید در اروپا هم ایندافتید در اروپا دست اون پی همون دی بود که دفعهن همین نام رو هم اونجا بود فکر کردم این پاسوخشه با سپاس از مهر شما جناب ستوده و همیشه من از دانش, دانش بزرگ شما بهره میبرم این روز باشید دوستان پرسشی ندارید؟ خب بس من بدرود بگم دیگه، تکساریم برای آینده بسیار خوب، سپاس گذاریم از شما ام براتون دیز دیز دیو شاد و به کام از یوار زومندین در پناه مهربانو را زنده باد ایران بدر و وصاستوته وصاستوته پیش نوروز بر شما فرخنده باد و شما هم بدرودین نوروز پیروز باد